حكایت در آن جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی سر و سری داشتم به حکم آن که حلقی داشت طیب العدا و خلقی کلب بدر آنکه بدا. آنکه نبات آرزش آب حیات میخورد در شکرش نگه کند هر که نبات میخورد اتفاقاً به خلاف تبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او درکشیدم و محر برچیدم و گفتم برو هرچه میبایدت پیش گیر، سر ما نداری، سر خیش گیر. شنیدمش که همی رفت و میگفت شب گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر. فقط تو زمان الوصله و المرعو جاهلون به قدر نزیز العیش قبل المساقه. بازار و مرا بکش که پیشت مردن خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. اما به شکر و منت باری پس از مدتی باز آمد. آن حلق داوودی متغیر شده و جمال یوسفی به زیان آمده و برسی به زنختانش چون به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته. متوقع که در کنارش گیرم. کناره گرفتم و گفتم، آن روز که خط شاهدت بود، صاحب نظر از نظر براندی، امروز بیامدی به صلحش کش فتح و زمه برنشندی. تازه را ورقت زرد شد، دیگ من کاتش ما سرد شد، چند خرامی و تکبر کنی، دولت پارینه، حسبور کنی پیش کسی رو که طلبکار توست نازبران کن که خریدار توست سبزه در باغ گفتهاند خوش است داندان کس که این سخن گوید یعنی از روی نیکوان خط سبز دل و شاب بیشتر جوید بوستان تو گند نازاری است بس که بر می و می روگت. گر صبر کنی ور نکنی موگ بناگوش، این دولت ایام نکویی به سرایت آید، گر دست به جان داشتمی، همچه تو بر ریش نگذاشتمی تا به قیامت که براید. سوال کردم و گفتم جمال روی تو را چه شد که موچه بر گرد ما جوشیده است؟ جواب داد ندانم چه بود رویم را مگر به ماتم حسنم سیاه پوشیده است.